سلام مرزو کام و خدمات شرمندهگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست هوومان خوش آمدید. در این قسمت در مورد ازارنامه صحبت میکنیم. آشخاص وقتی ازارنامهایشون ابلاغ میشه و درختی ازشون قرار میگیره باین میکنن که علایح ما شکایت شد. در صورتی که این حرف صحیح نیست. ارسال ازارنامه به معنای اقامه دعوانی است. بنابراین وقتی یک ازارنامه دریافت میشه و نه علایح شما شکایت کیفری شده است که کار با کلانتری و دادسرا و دادگاه کیفری داشته باشید نه علیه شما دوای حقوقی تر شده است که مثلا در وقت تعین شده به دادگاه حقوقی که ما شخص می شود مراجعه کنید خب این ارسال ازهارنامه اصلا برای چیست؟ قانون می گوید که شما اگر مطلبی را بخواهید به دیگری بگویید یکی از طرقه گفتن این مطلب که واجد آثار حقوقی هست ارسال ازار نام است. وقتی ازار نامش رو می‌رسال می‌کنید، این متن رو به شما در سیستم غذایی سپت می‌شه ولی یعنی فرد نمی‌تونید دو کاری که من این حرف نزددم یا این حرف گفته نشده است. پس شما در واقع مطالبی که مدنظرتون هست رو میتونید در غالب ازهارنامه برای طرف مقابلتون ارسال بکنید ضمن این که در ستون ازهارنامه نه اسمی از خواهان هست نه اسمی از خانده هست نه اسمی از شاکی هست نه اسمی از طرف شکایت هست در واقع یک ستون متعلق به کسیست که مطالبش رو ازهار میکند یک ستون متعلق هست به کسی که خطا به مطالب به ترفیت او، که مخاطب را می‌ده می‌شود و موضوع از هارنامه حالا دلیل آن دارد که همگر هست که ارسال می‌شود. مثلاً بر فرض مثال شما یک خراردادی بودی یا بستید که منزل شما رو صرف یک ماه نقاشی کرد. شروع این یک ماه رو مشخص کردید، خاتمه ش رو هم مشخص کردید. یشون مثلاً علاوه بر این سه روز از اینکه از آغاز قرارداد میگذرد نسبت به شروع کار خودش اقدام نمیکنه. شما باین که بعداً بتوانید ثبت بکنید یا متعی باشید که بنده اجرای قرارداد را زود خواستم، اما او مثلاً توجهی نکرد، میتونید اقدام به ارسال اسکرینامه بکنید که باز باید در شرایط فیلی تشییف ورید به دفتر خدمات الکترونیک رزایی. ام مطلوبی رو که میخوایید در قالب ارسال نامه ارسال کنید، دنختریارانها قرار دهید تا در فرمته ارسال نامه برای شمات هایپ بکنند، آماده بکنند که به توانی دان را از همان طریق ارسال بکنید. پس در واقع ارسال ارسال نامه یکی از طرائقی است که میتوان عمر مورد استفاده کرداد برای اینکه مطلوب خودتون رو که باید ارسال حقوقی از بیام مکنید. خوب وقتی که از نامه ارسال میشود، طرف مقابل وقتی اون رو دریافت میکنه، آیا الزامی داره که اون پاسخ بده؟ حلال اصول خیلی، الزامی به پاسخ ندارد. اگر تمایل داشته باشد، میتواند پاسخ بدهد. ولی اگر تمایل هم نداشته باشد، میتواند پاسخ ندهد. اما نمیتواند منکر وجود چنین مطالبی در آینده بشود. چون این مطالب از طریق سیستم قضایی ارسال شده و درانجا سبت و زبط شده است. پس، ما می‌توانیم اگر حقیق رو نسبت به کسی داریم مستحق اسارت نامه مورد مطالبه قرار بدهیم یا وقتی اسارت نامه‌ای به ما ابلاغ شد ما آن را دریافت کردیم اگر تمایل داشته باشیم می‌توانیم نسبت به آن پاسخ بدهیم. اما هم در ارسال اسارت نامه و هم در پاسخ به اسارت نامه که به ما ابلاغ شده همیشه باید توجه داشته باشیم که مطالبه که بیام می‌کنیم. در آینده علیه خود ما مورد استفاده قرار نگیرد. اگرچه ارسال ازارنامه می‌تونه توسط در شخصی سرود بگیره، اما توصیه میشه که حتماً ازارنامه یا قرار هست ارسال بکنید با یک متخصص حقوقی مشورت بکنید که این نکته رو به شما گوشزد بکند که وقتی مطالبی رو می‌خوایی در نسخه ازارنامه بنویسید باید به چه شکلی باشد. این را هم باید درست بکنم که ما نمی‌توانیم وقتی که می‌خوایم ازارنامه ارسال بکنیم در آن به ما خاطر بیمون تو این بکنیم یا متاهل به خارج از ادلب را ارز بکنیم. اگر چنین مواردی را ما بنویسیم، مثلاً در پیش نبیس خودمون، باید را به دفتر خدمات الکترونیک خزاای بدهیم. توقع قانون ارسال چنین اسناد نامهای ممنوع است. پس در نظر داشته باشیم که ارسال اسناد نامه واجد آثار هویس است و حتی هم باید پایگاه با متخصص قبلاً مشورت کنیم. تا متاهل بیکی میخوایم ارسال بکنیم چه در قالب ارسال اسناد نامه؟ چه در قله به پاسخ بس هارنامهایی که به ما ابلاغ شده است، چهار اشکال دراینده نشویم.